افسونه افسانه به نام خدا، سلام افسانهها ها روایتگر قصه های تلخشگیرین هستند قصه هایی که گاه زائیده تخیل هستند و گاه واقعی افسانهها ها چه واقعی باشند، چه تخیلی در دلشان پند و اندرز و حکمتی دارند که می توانند ما در مسیر پرپیچ و خمه زندگی باشند در این برنامه می خواهیم یکی از افسانه های کشور هندوستان را برایتان روایت کنیم. افسانه به نام عاشق پارسا گفته می شود این افسانه در کتاب ریگدا که مجموعه ای از اشعار و سرودده های هندی است نوشته شده. و قدیمی ترین داستان ای است از کشوره نوستان. قدمت ریگویدا به حدود 1600 تا 1600 سال پیش از میلاد مسیح برمیگردد. جالب اینجاست بدانید که کالیداس بزرگترین شاعر هند این افسانه را به صورت نمایش نامه است اگر همچنان ما را با برنامه افسون افسانه همراهی می کنید شما را به شنیدن افسانه عشق پارسا دعوت می کنید آنهای خیلی دور در کشور هندوستان پادشاهی زندگی می کرد به نام پروراواز در اون زمان مردان زمینی می با فرشتگان ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن فرشته هایی که قادر بودند به زمین بیان که آسپاراس نام داشتن یه روز که پرو رواز همراه دوستش راجو برای شکار به جنگل رفته بود یکی از دختران آسپاراس که فرشته آسمانی بود را دید به شما عرض کردم که این موقع سال برای شکار مناسب نیست سرورم به نظرم اگه سرورم؟ سرورم سربرم، سرورم سر پر و رواز سرورم سرورم شما حالتون خوبه خوبم راجو اگه خوبین چرا ایستادین حرکت نمیکنین چرا اینجا وا ایستادین نمیتونم دیگه را برم راجو چرا چی شده خدای من شما حالتون خوب نیست چرا چرا خیره شدین نگاه کن راجو کجا رو زیر اون درخت بلوتو ببین اون چیزیو که من میبینم تو هم میبینی؟ آره یه دختر زیر بلوط نشسته؟ ها اون یه دختر معمولی نیست اون یه فرشته است راجو ببین چقدر زیباست و افزون کرد بله ولی شما دختران زیبا و افزون زیاد دیگه. آره اما این با بقیه فرق داره من باید به دیدن اون دختر برم. آو این کار خطرناکه سربرم. شما اون دختر نمیشناسین. نباید خیلی بهش نزدیک بشین شاید شاید از دشمنان شما باشیم. من به دیدنش میرم تا بیشتر اونو بشناسیم. منو ببخشید سرورم اما من نمیتونم به شما همچین اجازه ای بدیم. یه من نمیتونی جلوی منو بگیره راجو. من بار مبرک من باید با اون دختر حرف بزنم. سربرم شما میخوایم به اون دختر چی بگم بهش میخوام بهش بگم قصد دارم با شزده باش کارم ولی سرفرم شما حتی با اون دختر حرفم نزدی نمیگیرین دخترش در شهن پادشایی شما هست یا نیست من حاضرم به خاطر اون دختر همه ی و شعون و منزلت پادشایی کنار بذارم راجو حالا به جای اینکه وقت من بگیری بارو کنار بذار کاریو که دلم به میگه انجام بدم عریف پادشاه نشد و پادشاه خودش رو به دختری رسوند که زیر درخت بلوت نشسته بود اون دختر اوروواسی نام داشت و یکی از آسپاراس ها یا همون فرشتگان آسمانی بود که همراه دوستانش به قصد تفرج به زمین اومده بودن برو پیش اروازی رفت و از احساسش برای او گفت من من اعتراف می کنم در تمام طول عمرم دختری به زیبایی و برازندگی زندگی شما ندیدم تو هم جوان زیبا و تنومندی هستی پرو رواس از همون لحظه که چشمم به شما افتاد یقین پیدا کردم شما به زمین تعلق ندارید همراه چند تا از دوستان به زمین اومدیم تا در این جنگل سرسبز گشتی بزنیم و به آسمان برگردیم برگردیم؟ یعنی یعنی قصد نداریم روی زمین بمونیم؟ نه من نمیتونم دوستامو تنها بذارم پس بس... پس تکلیف من چی میشه و روازی؟ منظورت چیه؟ من من دل به دریا زدم و به دیدنت اومدم تا تا به بگم به دلاغ مندم و میخوام باد ازدواج کنم. ازدواج؟ آره ازدواج. من به تو علاقه دارم و هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه این علاقه را از من بگیره. هیچ کس نمیتونه مانع رسیدن من بشه. مگر اینکه مگر اینکه چی؟ مگر اینکه تو راضی به این ازدواج نباشی. چی رو چرا سکوت کردی؟ نکنه تو حاضر نیستی با من ازدواج کنی خوب. تو جوان برازنده و زیبایی هستی به نظر شجاع میای و فداکار و وفادار هر کسی جای من بود چنین پیشنادی و رد نمیکن پس، پس با من ازدواج میکنی آره اما یه شرک هر شرکی باشه میبذیرم من دو تا برای زیبا و دوست داشتنی دارم که دلم میخواد همیشه اونا رو همراه خودم داشته باشم من اونا رو از جونم هم بیشتر دوست دارم میخوام بعد از ازدواجم اونا همراه منو کنار من باشن جدایی من و تو روزی میرسه که اون براها کنار من نباشه. من به تو قول میدم اجازه ندم هیچ اون دو که بر ازت جدا بشن حالا حالا حاضری با من ازدواج کنی؟ بله <تصفح> <تصفح> ازت ممنونم ممنون ما آره رو و اورواسی با هم استواج کردند. پروراواس به خاطر اوروواسی قصر رو ترک کرد و با هم به جنگل رفتن تا برههای اورواسی هم بتونند در جنگل آزادانه و شاد زندگی کنند. اونا کنار هم خوشبخت بودند و زندگی خوبی داشتند و از لحظه لحظه زندگیشون لذت می بعد فکری بکنیم سونیا، بعد هر طور شده ارواسی رو از اون پادشاه نجات بدیم و با آسمون برگردنیم دیوونه شدی سونا اورواسی و پرو راباس مدت که دارن با هم زندگی میکنن تو این مدت هیچی نتونست اونا از هم جدا کنه من و تو چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ حتور روی اگه تو این مدت خوب فکرامونو به کار می‌انداختیم حتما راهی برای نجات اورواسی پیدا می‌کردیم. جدا کردن اون دو نفر غیرممکن. هیچ چیز غیرممکن نیست. از اولش هم نباید اجازه میدادیم اورواسی با یه زمینی ازدواج کنیم این همه مدت جای اون توی آسمونو بین ما دخترها خالی بود. همه دل تنگ شدیم. اون باید خیلی زود به آسمون برگرده. منم به اندازه تو دلم برای اورواسی تنگ شده. اما میدونم که برگردوندن اون به آسمون کار ای نیست. اونم حالا که اروواسی و پروراواس حسابی به هم دل بستن ولی من فکر کنم میتونم راهی برای جدا کردن اونا پیدا کنم چرایی؟ یدت اروواسی برای ازدواج با پروراواسی شرط گذاشته بود شرط؟ آ آ آره آره شرطش این بود که پروراواس برای همیشه از بره هاش نگهداری کنه حتی شندم اروواسی بهش گفت روز جدایی ما روزیه که بره ها ازم جدا بشن درسته خب منظور چیه؟ منظورم اینه که ما میتونیم با دزدیدن بره ها کاری کنیم که پرو رواز سیر قولش بزنه اروازی افتی دید همسنه سیر قولش ساده از زمین با آسمون بر ولی ولی ممکنه پرو پی به نقشمون ببره و نقشه برابش کنه نه ترسنی ها من میدونم که یا چطورون بره ها را بدوزدیم که پروراواس رواز متوجه نشم کی؟ همین امشب؟ البته وقتی مطمئن شدیم اونا خوابیدن امشه آره البته تو هم به من کمک میکنی چون من به تنهایی نمیتونم دوتا بره بدوستم باشه فقط امیدوارم بیتونیم این لقشه رو عملی کنیم برای دوزیدن بره های اورواسی به منزل رفتن. رفتند. ها در اتاقکی نزدیک اتاق اورواسی خوابیده بودند. سونیا و سونام آهسته وارد اتاقک ها شدند و همین که خواستند برره‌ها را بردارند، متوجه صدایی شدند. به همین خاطرم فقط یکی از بره ها رو با خودشون برداشتن و به بیرون بردن کسی اونجاست؟ پرسیدم کسی اونجاست؟ چی شده اورو واسی؟ یه صدایی شنیدم فکرم ممکنه برای بره اتفاقی افتاده باشه نه این ممکن نیست پرو رواز پرو رواز چی شده روازی. یکی آه. از بره ها نیست کنم یه نفر وارد خونه شده و یکی از بره ها رو با خودش برده تو مطمئنی؟ آره بیا ببین آه اگه یه نفر یکی از این بره ها رو برده اومدن من دیگه فایده نداره روازی این چه بیا ببین کی میتونه بره رو برده باشه خب هر کسی میتونه بره رو بخونه شده باشه میشه لطفاً بیایی اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده باشه باشه الان میام چیه؟ چی شده؟ میبینی یکی از برره ها نیست مهم نیست در عوض یکیشون که هنوز هست این یکی هم میتونه نباشه من قول میدم از این یکی مثل چشمان مراقبت کنم نباید شرطمونو یاد ببری ازیاد نبردم عزیزه ولی شرط من هر دو بره بود منم مثل تو خواب بودم اروازی من که عمدم باعث دوزیده شدن اون بره نشدم باشه قبول میکنم ولی مراقب باش که برای این یکی بره اتفاقی نیفته هم. چون در اون صورت دیگه هیچ وقت منو نمی اورواسی و پروراواس با ناراحتی خوابیدند اما ساعتی بعد سونا و سونیا دوباره به اتاقک بره ها رفتند و برای دومم برداشتن و با خودشون بردن در همین لحظه اورواسی که صدای برره را شنیده بود از خواب بیدار شد و به اتاق بره رفت و دید که اتاقک خالیه و بره دوم هم دستیده شده نیز نیز نیز آرون باشو آرون باش نمیتونم تو به من قول دادی که از اون برنا مراقبت میکنی من, من نمیدونستم که وقتی خوابیم یکی میاد و این یکی بررم با خودش میگرد من دیگه نمیتونم دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم این چه حرفیه؟ این قرار ما بود قرار من و تو درسته اما من که عمدی باعث دوزیده شدن اون برها نشدن این حرفو هیچو اصلا عوض نمی کنه. ولی من دوست دارم اگه منو دوست داشتی باید به قولت عمل می کردی ولی ما از این به بعد و بدون اون برها میتونیم عاشق هم باشیم، با هم خوب زندگی کنیم. نه نه نه اون برها حلقه عشق من و تو بودن. با نبودن اونا دیگه عشقی هم بین ما وجود نداره. من میرم. ها همین الان میرم. از این به بعد دیگه مهر بین ما نیست چی؟ کجا داری میری ارواسی سب کن تو نباید منو تنها بذاری ارواسی ارواسی و پرو رواز رو تنها گذاشت پرو رواز که از رفتن همسرش به تنگ اومده بود از پادشاهی کناره گرفت و رفت تا اروواسیو پیدا کنه اون همه جا رو دنبال همسرش گشت و به هر کسی که می رسید سراغ اروواسیو می گرفت اون نه فقط از انسان ها که از پرندگان و چارندگان و سایر حیوانات جنگل هم سراغه اوروواسی ها گرفت چرا تو رو پیدا نمیکنم اوروس؟ چرا؟ وقت چرا هرچه بیشتر می گردم بیشتر ناامید میشه بگو گناه من چی بود که ترکم کردی حاضر نیستی به دیدن من بیاد سرورم باور کنید این همه بیقراری براتون خوب نیست یادتون رفته طبیب به شما چه سفارشی کرد؟ طبیب من کسی نیست جز ارواسی راجو باور کن اگه ارواسی رو ببینم دیگه هیچ درد و غمی ندارم ام. میبینید که اورواسی نیست مدت ها سرین دنبالش میگردیم کوه، دشت، جنگل، حتی دریا رو زیر پا گذاشتی ولی نیست شاید شاید به آسمون نه نه نه در... این حرفو راجو. من عطرو بوی اوروواسی رو از همین زمین حس میکنم اون روی زمینه نمیتونه اینقدر بیرحم هم باشه که به با آسمان ها رفته باشه کمی آه... اون طرف تریه رودخونه سرورم سرورم سرورم سرورم, سرورم صدای منو میشنوی؟ آره آره میشنوم میخوانی بریم طرف رودخونه شاید دیدن اون آب جاری حالتونو رو بهتر کنه باشه بریم <تصفح> هرچان میدونم بدون اورواسی هیچ چیزی حال منو خوب نمیکنه میخوام دلتنگیتونو تو رو بیشتر کنم ولی شاید بهتر باشه که کم کم با نوروواسی رو فراموش کنید فراموش باش راجو تو چطور جرأت میکنی از من چنین کار محالیو بخوای از وقتی اوروواسی منو ترک کرده نه خواب دارم نه خوراک نه آرامش خیال دارم نه قدرتی برای تمرکز فکر عذره منو بپذیرید سران مرگو زندگی من در دستان اوروواسیه فقط اونه که اونه که چی, چی شده سرورم اونه که آر... آر... آر... آر... آر... آر چی میخواییم بگیم؟ رود خونه رو ببین راچو د... در... رودخونه رو ببین خدای من اون بانو ما من... من... من خوابم یا بیدارم راچو شما بیدارین این س... س... سرورم، سرورم دارین از حال میرید قدیب باشین سرورم من... من باید بروسی حرف زنم بسیار خوب، بسیار خوب به نظرم بهتری شما همینجا بمونید. بانو و رواسی با دوستاش کنار رو دخونن. من شخصم میرم پیششون و اونشونو میگرم کنار شما خوبه؟ اجاله کن راجو، اجاله کن بله، بله سرورم، شما حالتون خوبه؟ مشکلی نداری؟ نه راجو، نه برو، برو، فقط برو باشه، باشه. باشه, باشه. نفتن نفتن. با دیدن اروواسی دچار ضعف شد و دوستش راجو رو به دنبال اروواسی فرستاد. اوروواسی ابتدا حاضر نشد به دیدن همسرش بره اما وقتی با اصرارهای راجو مواجه شد قبول کرد و به دیدن پرورواس رفت قرار بود دیگه همدیگه رو نبینیم پرورواس کی میتونه برای دل عاشق همچین قراری بذاره؟ باید بدونه اگه روی قول و قرارش پا باید عشقش رو از یاد ببره نمیتونم خیلی سعی کردم تو رو از یاد ببرم اما نتونستم خیلی سعی کردم به خودم بگم حالا که به عهدت وفا نکردی باید تاوانشم بدی باید اروازی رو فراموش کنیم اما نتونستم عشق تو اروازی در تارو پود وجود مردیش دویده بعد از این همه مدت که ترکم کردی هنوزم صدای نفسهاد به زندگی میده عطر وجودت حالم خوب میکنه صحبا با خیال شنیدن صدای تو بیدار میشم و شبا با رویای همصحبت شدن با تو به خواب میرم تو چرا قد سنگلی؟ چرا با بیرحمی من پس میزنی؟ من سنگ نیستم من زمانی تو رو ترک کردم که شرط با هم بودن و با هم زیر پا گذاشتی حالا منو نادیده بگیر درست مثل نسیمی که از سمت خاور میوزه و فقط یک لحظه احساس میشه برو برو روز برو به مردم کشورت خدمت کن تو چطور از من میخوای آزاد دل بکنم؟ چطور از من میخوای من دیگه هیچ وقت تو رو ترک نمی‌کنم. من حاضر نیستم به کشورم برگردم من همیشه با همیشه جایی هستم که تو هستی حتی اگه اونجا دورتر این نقطه دنیا باشه یا جایی باشه که دیگه برای من قابل بازگشت به زمین نباشه حضرت میخوام واقع بین باشی اشق <تصفيق> واقع بینی؟ نه تو از یه عاشق میخوای که واقع بین باشه عاشق نه چشمی برای دیدن داره نگوشی برای شنیدن با این حال تو از من میخوای نه آرو باسی؟ نه؟ من اگه تو از دست بدم نیست و نابود میشم اگه منو ترک کنی انقدر تو این جنگل میمونم تو بدنم تو این جنگل انبوه پوسیده بشه و بعد خوراک گربه و سکا بشم نه تو نباید این کار با خودت بکنی پس با من بیا نمیتونم. من مجبورم همراه سنیا و سنان با آسمان برگردم زمین جای من نیست ولی میخوام بدونی هیچ خاطرات خوبی رو که با تو داشتم از یاد نمیبرم این که خاطرات با هم بودن امونو به خاطر نیست باره دیگه دیاری دیار خوبه اما من دلم میخواد که بازم با هم زندگی کنیم دلم میخواد هر روز تو رو ببینم متاسفم پره روز. منو تو دیگه نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم چطور دلت میاد منو به من ازت خواهش میکنم اروازی خواهش میکنم منو تنها نظار در من فقط میتونم بهت یه قول بدم اونم اینه که سالی یه بار بدیدنت بیام همین راست میگی قول ازد ممنونم و راستی ممنونم سالشاه پرورواز اگر اگرچه نتونست اروواسی رو همراه خودش ببره اما به همین قانع شد که سالی یک بار ببینه. رو ببینه پرورواز خیلی زود سلامتیش رو به دست آورد و بین مردم کشورش رفت و زندگی شادی شروع کرد اوروواسی هم طبق قولی که داده بود سالی یه بار به دیدن همسرش می رفت. پرورواز در زمان دوری از همسر غمگین و افسرده بود و زهد و تنهایی و پیشه کرد و به مقام پارسایی رسید عشق اروواسی آنچنان در تار و پود وجودش ریشه کرده بود که بهش مجالی برای لذت بردن از زیبایی های زمینی رو نداد چی اوروواسی؟ چرا انقدر تو فکری؟ دل باهار پر راواس می‌سوزه سونا. دیدی به چه روزی افتاده؟ آخر واقعیت عاشقی جز این نیست. میدونم سونیا. اما دلم نمیاد اونو اینطوری ببینم تقصیر تو نیست. اون قردی رو که به تو داده بود فراموش کرده به این روزافتاده. میدونم اما اما چی؟ اما من میدونم که شما دوتا اون دو تا بره رو از داخل اتاقک بردیم. چی داری میگی یوروازی؟ تو, تو تمام سالایی که با پرو زندگی دندگی میکردم اون مثل جونش از اون بره مراقبت میکرد همه یه مردم این سرزمین میدونن که پرو رواس چقدر به اون برها اهمیت میده هیچکس جرأت نزدیک شدن به اونا رو نداشت جز کسایی که زمینی نبودن اه. ما هر کاری کردیم به خاطر خودت بود کاش بیشتر از خودم به عشقی که در دلم وجود داره اهمیت میدادی تو زیادی به پروراواس وابسته شده بودی جات کنار ما خالی بود قبول کن ما از روی علاقه این کارو کردیم دونم سونا خیلی وقتا خیلی کارا رو از روی علاقه انجام میدیم اما نمیدونیم اون کار چه عواقبی داره و چطور میتونه به طرف مقابل آسیب بزنه برای همینم فکر میکنم بهترین کارا اونایین یعنی که از روی عقل انجام میشن. خوب من من اعتراف میکنم که با دیدن پرو پروراواس حساب وجدان گرفتم. اصلا فکر نمی به این حال روز بیفته. اگه اوزا به همین منوال پیش بره پروراواس دیریاز نه نسونم. هیچی نگو. هیچی نگو. دلم نمیخواد در مورد مرگ پروراواز چیزی بهش مرگ خاصیت زمینی است، اروازی تو بعد اونو قبول کنی فقط مایم ما که جاودانیم، ما و همه آنچه در آسمان هست میدونم سونیا ولی نمیتونم تصور کنم که پروراواز بز... نه حتی تصورشم برام سخت به نظرم بهتره یه کاری بکنیم چه کاری؟ بهتره بهتره کاری کنیم که پرو هم به جاودانگی برسه منظور چیه سونیا؟ منظورم اینه که اونم به جرگه خودمون دعوت کنه. یعنی پرو هم فرشته بشه؟ آره چه اشکالی داره اون وقت پرو رواس و میتونن تا ابد کنار هم زندگی کنن و عمر جاودانه داشته باشن هم... یعنی میشه سونیا؟ آره چرا نمیشه؟ اما یه شرط داره چه شرطی؟ یه نفر باید به این آشق پارسا یه آتشدان بده تا با خودش به دل جنگل ببره آتشتان؟ آه. برای چه کاری؟ پرو باید به جنگلی دور افتاده بره و این آتشدانم با خودش ببره شبا و روزای زیادی تو جنگل بمونه تا آین جاودانگی رو به جا بیاره بعدش در آسمان به ما ملحق بشه خیلی خوبه سونیا. با این حال یه نفر باید این آین به پرورواس یاد بده اون یه نفر آروازیه من؟ آره تو این تویی که باید آتشدان رو به پرورواز بدی و بعدم بهش بگی که چطور میتونه آینه جاودانگی رو به جا بیاره باشه من برای جافدانگی پرورواز هر کاری میکنم بسیار خوب. پس بهتره بریم و آتشدان رو به زمین بیاریم سونام و اروواسی به آسمان رفتن و آتشدان و با خودشون به زمین آوردن. سونیا آتشدان و به اوروواسی داد و از اون خواست تا به درستی آین جاودانگی و به پرورواس یاد بده. اروواسی هم با آتشدان به دیدن پرورواس رفت و هرچه از سونیا شنیده بود به او یاد داد. خاش میدونستی شعله های عشق تو در دل من از شعله های این آتیش گداخته تره میدونم برای رفز میدونم دل من هم از آتش همین عشق در حال سوختن به محض اینکه از تو جدا شدم به دل جنگل میرم و آینه جاو رو به جا میارم تا برای همیشه کنار تو بمونم خیلی خوبه اگه تو هم جادو دانه بشی دیگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کن فقط به من بگو بعد از به جا آوردن این آین کجا باید تو رو ببینم من و بقیه از دل آسمان به تو نگاه میکنیم به محض اینکه آیین آین به آخر رسید تو به ما ملحق میشی یعنی یعنی من به آسمان ها میرم آره بعد از اون تو دیگه به زمین تعلق نداری فرشته ای میشی در دل, دل آسمان من این خیلی هیجان انگیزه اینکه تا ابد میتونم تو بمونم مثل یه رویاست آره. حالا تا دیر نشده برو پرو رواز برو, برو. باش رو باسی به امید دیدار به امید دیدار دوران دوری و جدایی تموم شد پرو رواز از این به وقت تو با آسمان ها تعلق داری از این به بعد به جاودانگی می‌رسی و برای همیشه کنار اورواسی می‌مونی محکم باش به اروواس این عشقی که داره تو رو به طرف خودش دعوت می‌کنه این عشقی که اوروواسی؟ نه باگر اروواسی تو این جنگل تنها می‌ذاشتم باید بر کردم خود من اورواسی اورواسی کجا هستی اوروواسی؟ صدای منو می‌کنبی؟ اروواسی خواهش می‌کنم جواب بده اروواسی کمکم کن ارواسی آتش از دست من افتاد جنگل داره آتیش میگیره کم کن آره از دست پرورواز افتاد و جنگل آتش گرفت بعد هم دو درخت به نام های شامی و آسواتا به طرف پرورواز خم شدن و به پرورواز کمک کردند تا آین جاودانگی رو به جا بیاره در پرتو اون آین بود که پادشاه پرورواز قدم به دنیای تازهی گذاشت و به آسمان ها کرد تا برای همیشه در کنار معشوقش خروباسی زندگی کنید این هم از افسانه عشق پارسا که افسانه هندی بود و حکایتی عاشقانه داشت که به سرانجامی نیک منجر شد امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت برده باشید افسونه افسانه این داستان عشق پارسا تنظیم برای رادیو از سهیلا خداداده بازیگران به ترتیب اجرا مहरुخ افسلی مجتبی تاباطبایی امیر فرهانیان بهناز بستاندوست نوشین حسنزاده شیرین سپهراد کارگردان ایوب آقا خانی افکتور نازنین حسنپور صدابردار فرزاد شریفی تهیه کننده زهرا عبدالله ساده افثانه ها رنگی از زندگی هست زندگیتون دلنشین و مانا. افزانه دیگر یار